از اجزای صورتش تنها دو چشم روشن و مهربانش پیدا در همان نگاه اول اسماعیل را او شال به کناری رفت و دستهای بلندش مثل دو بال قوی بزرگ و با به سوی اون کشیده شدند اسماعیل خودش را در آن آغوش مهربان رها کرد چه آرامش عمیقی داشت آغوش آنا. پیراهنش بوی پونه و صابونهای خوش عطر سقاتی میداد. از همانها که آنها همیشه میگذاشت توی بخچه و لابلای لباسهای تمیزش. قربون چشمات برم ای دلم. خدا نکنم. بیا تو نور چشمم. چراغ خونم. اسمایل را با خود برد تو. دالان همان دالان قدیمی بود. اما به نظرش تاریک تر آمد. بوی رطوبت میداد. انتهای آن در دیگری بود که رو به اتاق نشیمن داشت. آنجا طویله بود. آنا کمی خمیده و کوچک شده بود. وقتی به مقابل در اتاق نشیمن رسید، نایهان برگشت و گفت: ای وای، در کوچه باز موند. من میبندم. نه، زبون اونو من میدونم، تو نمیدونی. خودم میبندم. ای خدا خورشیدم از کجا در اومده خونه روشن کرد. رفت. در باز بود. پیش از آن که آن را ببندد، سرش را بیرون برد و به اطراف نگاه کرد. در را بست و کلون پشت آن را انداخت و آمد. سرพนمون نور چشمم خسته راهی راه افتادند اسمایل طویله را میشناخت موقع عبور گردن کشید و توی آن را نگاه کرد ا آنا گاوم که داری خیلی سال این حیوان اینجاست آهان حالا یادم افتاد دیده بودم دیده بودم اون که دیدی این نبود مادرش بود چقدر مثل همان اصلا فکر نمی‌کردم این اون نباشه. شیرم میده آره شیر میده حالا حیوون ولش کن بیا تو اتاق خسته‌ای دردونات بخوره به جون صد تا همچین گاف. گاف سرش را بلند کرده بود با های درشت و میشین نگاهش میکرد. اسماعیل برایش دست تکان داد و گذشت آنها دمه در اتاق منتظرش بود کفشایش را درآورد و داخل شد وسط اتاق هنوز کرسی بود با لاحافی بزرگ و چلتیکه اطراف اتاق پای دیوار مفرش بود و پشته‌های رختخواب با چند گونی پر از آرد و گندم زیر آنها به ردیف گنجه بود با درهای چوبی کوتاه شبیه لانه همچنان ایستاده بود و چشم میدواند. آنا ساک را از دستش گرفت و گذاشت روی یکی از فرشها. ها. اسمایل آهسته به طرف کرسی رفت. گربهی به رنگ هنا سر گرد و پشمالویش را روی دو دستش گذاشته و روی لحاف چلتی که خوابیده بود. آنقدر راحت که گویا هیچ مشکلی در زندگی نداشت و در آینده هم نخواهد داشت. آنا گوشه لحاف کرسی را کمی بالا زد و گفت بیا بشین عزیزم استخونات گرم میشه در جایی که آنا نشان داده بود نشست پاهایش را دراز کرد و گذاشت لبه تنور که داغ بود گرمای ملایمی همراه با عطر عدسی که با روغن حیوانی توی تنور در حال پختن بود پرهای بینی را نوازش داد و اشتهایش را تحریک کرد پشتش را به یکی از چهار ستون چوبی اتاق تکیه داد گرما آرام آرام از پاهایش به بالا میخزید گربه‌ی گویا خواب می‌دید سبیل بلندش میلرزید و گوشه دهانش باز می‌شد. به طرف کرسی خم شد و سرش را نوازش کرد گربه با بیمیلی کمی پلکایش را بالا کشید و با چشم های خوابالود و مرتوبش نگاه کرد گویا خواب خوبی ندیده بود عصبانی به نظر می رسید باز هم سر گرد و پشمالوی او را نوازش کرد و مثل کلاف کاموای نرم مالند گربه با صدای خوابالودی اعتراض کرد و دومش را به چپ و راست داد. در همین موقع آنا با یک سفره آمد تو. آنا روی کرسی پهن کرد گربه را به پایین هل داد. "پیشته، ولش کنی تا شب میخوابه تنبل." گربه با دلخوری خودش را پایین کرسی پرتاب کرد و به آنا چشم دوخت. "اسماعیل عقب نشسته پرسید: آنا چیکار میکنی؟ "کاری نمیکنم نور چشمم." با عجله رفت و این بار با یک پیاله پر از سرشیر برگشت. "تعارف که نمی‌کنم، الان اشتها ندارم." نگو عزیز دلم جوون همیشه اشتها داره منتها خودش بیخبره با آمدن سفره سر و کله گربه هم پیدا شد و با نگاه و رفتار خود حالی کرد که او هم میخواهد بخورد اسماعیل به اندازه کف دست نان کند و با قاشق روی آن سرشیر مالید و گذاشت گوشه سفره گربه سر و کمرش را خماند و به اندامش غوس داد و با کشیدن یک خمیازه بلند رفت سراغ تکنان سرشیر مالیده شده و مشغول خوردن شد در همون حال آنا نشست پای کرسی و پرسیل خب چه حال چه خبر مادر حالش چطوره داداشت محبوب خوبه خیلی خیلی سلام دارن. دیگه چطوری چه عجب از این طرفا سلامتی آنا شب عیدی دلم هوای تخم مرقای رنگی تو کرد همین اطراف بودم گفتم پاشم بیام پیشت خوب کاری کردی عزیز دلم چراغمو روشن کردی خدا پشت پناهت باشه پسر پدرم حالا صدایش مثل یک لالایی ملایم و مهربان شده بود. دور چشمهایش عشق حلقه زد. سکوت شد. هیچ کدام حرفی نزد. گربه با زبان سرخ و الوالوی خود در حال لیسیدن سرشیر نام بود. آن صورتش را چرخاند و با گوشه چهارقد اشکهایش را خوش کرد. اسماعیل وانمود کرد که سرگرم خوردن و تماشای گربه است. کمی بعد برای اینکه سکوت را بشکنت پرسید، آنا خود چطوری؟ با روزگار چه می اول آه کشید چطوری می باشم نور چشمم؟ هستم دیگه قسمت منم این بود که تک و تنها تو این خونه بمونم و با روزگار سیاه هم بسازم شب و روز با در و دیوار حرف میزنم. زنم ها و رفته میان جلو چشمم دیر یا زود منم میرم پیش اونا و در این خونه برای همیشه بسته میمونه. صدایش لرزید، گلویش گرفت نفسش سخت بالا آمد ماهها و سالها میان و میرن. نگاه نگاهم به این در دوخته میشه یکی بیاد و صدام کنه و حالم رو بپرسه با این گاو و گربه و چندتا مرق هم نفسم مثل من که اومدم و پرسیدم حال چطور بزرگ خنده روی لبهایش دوید و نگاهش پرفروغ شد قربون تو برم نور چشمم اسمایلم غیرت ایلم خدا همیشه پشت و پناهت باشه چابک از جا بلند شد چند قدم به طرف در رفت و برگشت ایوا یادم رفت چی بلند شدم آهان گاو الان تاریک میشه. آنا رفت و در چوبی را با سر و صدا پشت سرش بست نان لواش و سرشیر تازه توی دهان اسمایل مزه داده بود گربه داشت اطراف دهانش را لیس میزد. بعد از پاک کردن دور دهان دوباره دراز کشید و این بار شروع کرد به لیسیدن و تمیز کردن روی ران و زیر شکمش اسمایل سیر شد لیوان را از آب پارچ پر کرد و سر کشید سرما از گلویش سرازیر شد سفره را کشید و خودش رفت زیر کرسی ستون زرین آفتاب غروب از روزنه صقف اتاق روی فرش تابیده بود قباری ریز از کرک و ذرات ناشناس درون استوانه نور در هم میلولیدند بنفشه دره در آن وقت روز در سکوت سنگینی فرو رفته بود گاهی صدای پارس سگی از آن سر آبادی شنیده میشد یا جیک, جیک گنجشکایی که میخواستند جای خوابی پیدا کنند. یا جیرجیره گاه به گاه تیرکهای چوبی سقف اتاق اطراف اتاق چشم دواند کنج و سجاف دیوارها شبکه‌ای از تاره بود دیده میشد روی تاخچه ردیف کاسه های چینی با نظمی خاص چیده شده بود سین ریز ظریفی از دانه های اسفند و خوشهٔ چشم نواز سنبل های خشک گندم از سینه دیوار آویخته بود پایینتر تاقچهٔ کوچکی دیده میشد که تنها یک چراغ لمپا در آن جای گرفته بود گویا به قواره آن چراغ ساخته شده بود نگاهش از روی چین و چروک دیوار می و از لابلای تیرهای چوبی دود زده ی میگذشت و حضور کسانی را که سالیان سال زیر این سقف زندگی کرده بودند احساس می کرد. گویا گوشه گوشه این اتاق قدیمی با زندگی آن در گذشتگان آغشته بود حالا از آن همه تنها مادر مانده بود آخرین نگهبان ایلو تنها نشانه آن شوکت شبانی که وقتی در گرگومیش غروب گله گاف ها و گوسفندهایشان هایشان از صحرا برمیگشت همه آنها در طویل جا می شدند و ناگزیر تعدادی را به آقل و طویل همسایه می بردند اکنون از آن همه ساکنان خانه تنها آنا مانده بود و از گله بیشمار فقط یک گاو آنا با آتش که دود سفید و خوشبوی اسپند از آن به هوا برمیخواست برگشت گربه از بوی اسپند خوشش نیامد به حالت قهر بلند شد و های بلندش را تاباند و خودش را از بالای کرسی زمین انداخت و بیرون رفت. برای چی اسفند؟ به خاطر تو سر بلند تایفم. نمیدونه این بالادگی یا چقد چشمن بذار چشمشون مثل این اسفند بترکه. ولی از پاینده اومدم، کسی هم ندید. های های های. تو فکر کنی ندیدن؟ اونا از اون بالا ما رو میپان. چشمشون سنگ و صخره رو میترکونه. چه برسه به این دیوارای خشتی. حالا همه‌شون می‌دونن که تو اینجایی. در همان حال آتشگردان را به گوشه‌ها و زوایای اتاق نزدیک میکرد تا دود به همه جا برسد. حتی سوراخ‌ها و جرس های ریز جایی از اتاق نماند که دود سرک نکشیده باشد. آتشگردان را به طویله و انباری برد تا گاو هم از یاد نرفته باشد. بوی اسپند و گرمای کرسی کم کم اسماعیل را خمار خواب کرد. پلک‌هایش به اندازه لحاف کرسی سنگین شد افتاد روی چشمایش. ستون نارنجی خورشید در نگاهش مثل دسته الیاف آویخته از سقف در هم میتنید و تارهای تابناک آن با لرزشی ریز محو میشد در آخرین لحظه های بیداری احساس کرد آنا به نرمی لحاف را روی سینهاش میکشد و میگوید نگهبان ایلم نور چشمم نفهمید چقدر خوابید باز هم صدایی شنید باز هم کسی گفت پاشو ستون خونم امید تایفم بلند شو در برزخ میان خواب و بیداری احساس کرد آن صدا شبیه صدای آن است. و آن کسی هم که بالای سرش ایستاده ساده و صدایش می شبیه او. خواست چشم باز کند، خواست ببیند، خواست بلند شود، اما نتوانست. در جهان خواب و خیالش ماند با صدای پارس سگی از پشت دیوار اتاق بیدار شد. دهان گشوده سگ را می دید، دندانهای تیز، زبان سرخ و نگاه خلندهش را. آنها زیاد می شدند، بیشمار می شدند. به اندازه یک دشت پوشیده از برف می شدند، پارس می کردند، زوزه می کشیدند. آن وقت گوشهایش پر از و زوزه می شد. می ترسید، جا جا می شد، خودش را فرو می زیر کرسی و لحاف را می کشید روی گوشهایش تا هیچ صدایی نشنود. بعد کسی نوحه می خوند، اول فضل، او هم گریه می کرد. های های. چند بار با صدای گریه خود از خواب بیدار شد آنها در سمت دیگر کرسی خوابیده بود صدای نفسهایش میآمد روزنهٔ سقف بسته شده بود آسمان دیده نمیشد جا تاریک بود چند سلوات فرستاد و دوباره خوابید آخرین بار با صدای ماق گاو از خواب بیدار شد تنین شیپور مانند صدای حیوان درون اتاق میپیچید صبح شده بود خاست لحاف کرسی را از روی خود کنار بزند و بلند شود. لحاف سنگین بود، مثل اینکه ای را روی آن گذاشته باشند. محکمتر کشید. از به لحاف قلتید روی زمین و بلند شد و قُر زد و دور شد. او هم با عجله شلوارش را کشید، پایش و پیراهنش را پوشید و رفت بیرون. در طویل باز بود، سرک کشید. بوی سرگین و علوفه خشک می‌آمد. آن ازیر پستان گاو چنباطم زده بود، و آن را می دوشید. شیر شر شر در بادیه می ریخت. در همان حال آنا زیر لب آواز غمناکی را زمزمه می کرد. اسمایل داخل شد. گاف فهمید سرش را بالا گرفت. گوشهایش را تیز کرد و با چشمهای درشتش حراسان به او نگاه کرد. باد در بینی نمناکش انداخت و گردن تکان داد و پا بر زمین کوبید. آنقدر که صدای لالایی مانند آنا قطع شد و با تعجب گفت. ها؟ گیلین خانم چی شده؟ چرا بیقراری؟ اسمایل بی حرکت ایستاده بود با آن صحنه نگاه می کرد گاو بیتاب بود و گوشهایش را به نوبت عقب و جلو می برد و گاه هر دو را به جلو تیز می کرد گیلین گلم چرا شیرتو قطع کردی. مگه نمی مهمون داریم هان؟ گاو محکم سرش را تکان داد اسمایل پا پیش گذاشت سلام آنا با شنیدن صدا از زیر شکم گاو سرک کشید پاسگیلینگ تو رو دیده که شیرش برگشته. برگشته؟ اگه حیوان به طرز شیرش بهم میاد. یعنی الان از من ترسیده؟ غریبه که ببینه میترسه. خب کاری نداره الان آشنا میشیم. جلوتر آمد گاو وار نگاهش میکرد آنا سرش را برده بود زیر سینه حیوان و پستانهایش را دو به دو میگرفت و رو به پایین فشار میداد و آهسته آواز میخواند. کم کم صدای ریختن شیر از درون بادی آمد. اسماعیل خوشحال شد مثل اینکه ترسش ریخت حیوون دیگه عادت میکنه گاو قهوهیی روشن بود با اندامی کوچک و چشمهایی به قاعده یک پیاله که خط ابرویی مشکی و پررنگ مثل هلال بالای آن کشیده شده بود آنا با او ملایم رفتار میکرد معلوم خیلی دوستش داری ها. چی چیکار کنم به هم عادت کردیم چند سال پیش دزدیدنش بردنش به یکی از دهاتای پای سبلان حیوان شبونه فرار کرد و برگشت صبح وقتی رفتم حیات دیدمش مثل این بود که دنیا رو بهم به دادن زبونم بند اومده بود از بس خوشحال شدم اسماعیل خندید به گاو نزدیک شد دستش را به طرف پوزه سیاه و مرطوبش دراز کرد حیوان سرش را به شدت تکان داد و نفس عمیقی کشید و با فشار از منخرینش بیرون داد آنا گفت وسط شاخشو بخارون آروم میشه همان کار را کرد گاف سرش را پایین آورد تا او وسط دوشاخ کوتاهش را خوب بخواراند کم کم حیوان شروع به نشخار کرد بادیه پر شده آنان آن را از زیر شکم گاو برداشت و گذاشت روی سکویی که تنور کوچکی آنجا چال بود پیشبندش را باز کرد و گفت خبرداری امروز عیده؟ اسماعیل مکس کرد و با تعجب جواب داد نه همه چی یادم رفته مادر بزرگ جلو آمد. دو دستش را روی گونه‌های اون گذاشت و سرش را پایین آورد و پیشانیش را بوسید عیدت مبارک نور چشمم عید شما هم مبارک بیا صبحانتو بخور الان مردم جمع میشن تو قبرستون برای مردهها فاتحه میخونند و از اونجا دست جمعی میرن خونه های هم تو هم همراهشون برو نگران شد با این رسم و رسوم بیگانه بود کسی را نمیشناخت با این حال نتوانست نهبگوید رفت و سر صفره صبحانه نشست افتوب اولین روز سال بر کوچه ها و گذرگاه های تنگ و مرتوب بنفشه در رتابیده بود. بوی تند دیوارها و خانه های کاهگلی و سرگین گاوها در فضا معلق بود. صدای جیغ و ویغ بچه‌ها با جیک گنجشکان در هم آمیخته بود. نزدیک میدان ده چند پسر بچه قد و نیم با گونه های سرخ و چشم های شفاف و برافروخته سوار بر اسب های چوبی پشت سر هم میتاختند و مثل اسب شیه میکشیدند. در پیچه کوچه زن قد بلند و لاغری با کوزه آبی بردوش روبرویش در آمد آشنا بود دیده بود او را بارها خال سفورا با شوهرش به تهران آمده بودند مادر برایش تعریف کرده بود که با سفورا توی بنفش در همسایه و همسن و سال بودند کودکی و نوجوانیشان با هم گذشته مادر گفته بود بهترین دوران زندگیش همان سالهایی بوده که با صفورا تهی شده بارها از آن روزها گفته و حسرت خورده بود. به او قسمتیم قسمت این بوده که آن دو خیلی زود بیوه بشوند. اول پدر اسماعیل از دنیا می رود و سفورا با شوهرش برای تسلیت می روند. بعد هم به فاصله چند ماه شوهر سفورا او را تنها میگذارد. مادر می گفت سفورا دختر با کفایتی به اسم سونا دارد. به هم نزدیک شدند. تکیده بود و غمگین کمتر به خال سفورایی که پیشتر در می شباهت داشت. سلام خاله، عیدت مبارک. سفورا کوزه آب را از دوش پایین کشید و ته را زمین گذاشت و با یک دست دستش را گرفت و به دیوار تکه داد و گفت: عید تو هم مبارک. اول نشناختمت خاله، چه عجب اینجا نزدیک شدند. سفورا با خنده ی آشنا گفت: ماشالله برای خودت مردی شدی، یه مرد ریشدار. سرش را پایین انداخت. نمیدانست چه بگوید. سفورا پرسید مادرت چطوره؟ هیچ میدونی من اون مثل دو تا خواهراتنی هستیم؟ همیشه حرف شما تو خونه هست. مامان به هر بحونه ای از شما تعریف میکنه. خیلی از جوونیت ببینی. خدا تو رو برای مادرت حفظ کنه. حالا نگفتی چطور شده یه دفعه روز اول عیدی از بنفشه در سر درآوردی. اومدم از آنا عیدی بگیرم. وا، کدوم عیدی؟ تخم مرغای رنگی دیگه؟ صفورا خندید و گونه هایش گل انداخت. زنده باشی یا هر سال بیای از مادربزرگ تخم مرغ رنگی بگیری. در همین موقع صدای جیغ بچه هایی که سوار بر های چوبی در حال تاخت و تاز بودند بلند شد. گویا گرگ به گله ها زده باشد. هر کدام به گوشه‌ای گریخته و پشت دار و دیوار پنهان شدند. چند لحظه بعد صدای ممتد بوغ شیپوری دوچرخه‌ای شنیده شد. صفورا با دیدن دوچرخه و سوارش گفت: خاک بر سرت، قد گاو شدی اما عقل گنجش گنجیش تو کلت نیست چرا سر به سر بچه ها گذشته؟ با تعجب پرسید سفورا سرتکان داد و گفت همین جوریه اهل همینجاست؟ آره اسمشم هم سلطانه پدرش پونزده سال پیش برای کار رفت تهران دیگه خبری ازش نشد نه از مردش نه از زندش این موند و مادرش سلطان سرش را روی دسته فرمان خمانده بود و با سرعت رکاب میزد. دوچرخه از عبوری او کوچکتر بود برای همین موقع رکاب زدن زانوهایش تا نزدیک سینه بالا می آمد. وقتی به آن دو رسید به جای گرفتن ترمز کف پاهایش را به زمین فشار داد و کمی کشید دوچرخه پس از چند بار به چپ و راست پیچیدن ایستاد با این حال چرخ جلو به کوزه سفورا که به سینه دیوار تکه داشت خورد آن را انداخت کوزه شیب خاکی کوچه رو به پایین غلطید و آب آن قلاب از دهانک سرازیر شد کمرت بشکنه سلطان نزدیک بود کوزم رو بشکنی سلطان با خنده گفت خال سفورا چرا یه همچین روزی نفرینم هم میکنی؟ مگه نشنیدی از قدیم گفتن عاقبت کوزه شکستنه فقط مواظب باش دل کسی رو نشکنی وا چه حالا شاعر شده آب قلب قلب از دهان کوزه بیرون میریخت و جاری میشد. سلطان نگاهی به کوزه کرد و دو چرخه اش را به سینه دیوار تکه داد خودش را به کوزه رساند گلی آن را گرفت و از زمین بلندش کرد و چند بار روی دست چرخند و دروبرش را نگاه کرد و گفت خال سفورا عمر کوزات هنوز به دنیا بوده نه شکسته نه ترک برداشته سالم. سالمه حالا میخوای ببرم سر چشمه برات پر کنم بیارم؟ نخواستم پر کنی خودم پر میکنم، بدهش بدش به من خال سفورا اینقدر کچ خود نباش بیا مثل قدیمان ماچم کن برو مادرت ماچت کنه خرس گنده عقل کم. من امسال با دختر قوتاز عروسی میکنم اگه نکردم اون وقت دعوتت نمیکنم تو هم خیالت خوشه من حالا حوصله عروسی رفتن ندارم سلطان با کف دست کوبید روی زینه دوچرخه همه میدونن که من خاله ندارم تو هم که خالص صدا میکنم اینطوری میکنی خیلی خوب حالا این آقا رو شناختی و به اسماعیل اشاره کرد که ایستاده بود و به حرفهایشان گوش میکرد سلطان نگاهش کرد و گفت نه والله نشناختمش نبهی مشمدی نست دیگه اسمایل آهان پس این آقا اسمایله عیدت مبارک به بنافش دره خوش اومدی میبخشین من و خاله با هم شوخی داریم دعا کن خدا تو این سالن و به تو عقل بده به منم صبر. این را گفت و کوزه را از دست سلطان گرفت و دوباره به طرف چشمه برگشت سلطان آه کشید و گفت شنیدی پسرخاله خاله همه احالی این خراب شده اینجوری اخمو، بد اخلاق, حوصله. خب باید ببینی چرا خاله رو بی حوصله است هنوز خیلی از فوت شوهرش نگذشته عوضش رفتی زن سرخان شده کت خود و سرخان و شلوار، کلاه لبدار، کراوات، تریاک، مهمونی رئیس پاسکا، قمار و ممار، سونا مونا هیچی بلش کن ببینی خرابه ها رو میبینی؟ آره اینا روزی خونه بودن اما حالا خرابن. یه روزی میرسه همه این بنفشدره میشه یه خرابه آباد. از کجا میدونی؟ میدونم دیگه. جایی که خدایش سرخان باشه، دیر یا زود خرابه میشه. اون وقت هیچ کس نمیمونه جز من و دختر قوتاس. با هم عروسی میگیریم و تو هر خونه ای که دلمون خواست زندگی میکنیم. اسماعیل با حیرت به خانه های اطراف نگاه کرد. همه کهنه و کاهگلی بودند با شکافها و جرسهای زیاد و آلفهای هرزی که کنار دیوارها و اطراف ناودانها روییده بود. معلوم بود خانه ها خسته بودند و میل به فروریختن داشتند حالا واقعا میخوای با دختر قوتاز عروسی کنی؟ آره هم من میخوام هم نازی اما قوتاز اجازه نمیده میگه زمین نداری، زراعت نداری، بیکاری، بیعاری، بیعقلی، فلانی، بهمانی دخترش چی؟ اون میخواد؟ آره بابا میخواد یعنی چی؟ میمیره برام میگه یا سلطان یا دریاچه. نفهمیدم منظور از دریاچه. اینجا وقتی زنها و دخترها دستشون از همه جا کوتاه میشه خودشونو پرت میکنن تو دریاچه. نازی هم همینو میگه. از بس منو دوست دارد. اسمایل به فکر فرو رفت و پرسید. یعنی yani, واقعا این کارو میکنن؟ اوه زیاد. چند که خودم یادم. بچه ها باز هم سوار بر اسب‌های های چوبیشان در میدان ده تاختند و برای خودشان شیه میکشیدند. اسمایل پرسید. مادر بزرگم میگفت مردو جمع میشن تو قبرستون من اونجا رو نمیشناسم میای بریم بریم با این دو چرخه من با این دو چرخه قبرستون که هیچ سبلانم میرم با هم راه افتادند طرف گورستان روستا که بالای بنفش دره بود و پشت یک تپه پتوپهن و و نه خیلی بلند میدان و مسجد و چشمه آب را پشت سر گذاشتند بچه می آمدند سوار بر همان اسب های چوبی با تکه نخ یا شلیط مندرس در دست که به جای شلاق بر گرده و کفل اسب پایشان میزدند تا از دیگران عقب نمانند گروه سواران وقتی به سلطان نزدیک میشدند میگفتند سلطان میایین مسابقه اگه راست میگی بیا نمیان شما میخورین زمین مادراتون میان سراغم من بازی نمیکنم جون و نازی بیا ببین به جون و نازی قسم خوردی ما مگه دوستش نداری؟ چرا دوستش دارم اما با شما بازی نمیکنم آن وقت بچه ها سر به سرش می‌گذاشتند. سلطان سلطان نازی اومد و سلطان گردن می‌کشید و به اطراف نگاه می‌کرد. کو کجاست کدوم طرف هرکیر رو بچه ها به آسمان بلند می می‌خندیدند و به اسب‌های های چوبیشان شلاغ میزدند و می‌تاختند و بعضی وقتها هم یورت میرفتند. سلطان وقتی دید آنها سر به سرش گذاشتند یک پایش را بلند کرد و از بالای زین گذراند و گذاشت روی رکاب دوچخ و به طرف بچه ها راند. دور و گواه، دور و گواه، بچه ها جیغ کشیدند و شیه کشیدند و چهار نل تاختند و گوشه و کنار پنهان شدند. تا سلطان دور خود به چرخد و دستش به کسی نرسد و سرش گیج برود. زنها که سر چشمه مشغول پر کردن کوزه آب یا شستن ظرف و لباس بودند با دیدن آن صحنه سر و صدایشان در آمد آهای خرس گنده، چرا سر به سر بچه ها میذاری؟ مگه اونا هم تو هن؟ سلطان با صدای بغزالو جوابشان را داد اینا سر به سر من میذارن همش میگن نازی اومد نازی اومد کو نازی که نیامد اگه نازی سراغ تو نمیاد خب تو برو سراغش بچه ها چه گناهی کردند ها چه گناهی کردند دروغ گفتن به این مسجد دروغ گفتن به این چشم دروغ گفتن دل منو شکستن یکی از ادای او را درآورد دل منو شکستن آخ. این حرف به سلطان برخورد. بریم خودتونو مسخره کنین، اون شعرهاتونو مسخره کنین تا ادبتون کنن. فهمیدین حالا؟ صدای خنده زن‌ها با شوشوره آب چشم قاطی شد. فهمیدین، فهمیدین. الان میرم میگم ادبمون کنن. اسمایل صدایش کرد. بریم سلطان ولشون کن. وقتی سلطان آمد برفروخته بود. با کف دست اشکایش را پاک می‌کرد تا او نبیند. در شیب ملایم کوچه ای تنگ و کج به سمت بالا راه افتادند. از پشت یکی از درهای بزرگ، ناگهان سگی غررید و با صدای بلند پارس کرد. اسمایل ترسید و کنار کشید. سلطان پرسید، از سگ می ترسی؟ اسمایل که سعی می کرد آرام باشد گفت، بعضی وقت آرام می ترسم، مخصوصا که بیخبر باشم. من که یه ذره هم نمی ترسم، همه سگای ده منو می شناسن. با همین دو چرخه دنبالشون می بعد پرسید، از گرگ چی؟ از گرگ هم می ترسی؟ اصلاً تا گرگ دیدی؟ اصلا گرگ؟ لامستب وقتی نگاه میکنه آدم زبونش بند میاد حواست باشه که اینجا گرگ زیاده شبا از سبلان سرازیر میشن توی ده گوشون و گوشون به پیرمردی رسیدند که با پشتی خمیده پاهای کوتاه کمانی به کمک چوب بستی کج و کولهی به زحمت خودش رو از شی به بالا میکشید سلطان برسید؟ میشناسیش نه نمیشنسم ای چطور نمیشنسی؟ دیگه همه میشناسنش می اون قدیما جوونیاش دشتوان بود. بزرگ و کوچیکه این ده از دستش کتک خوردن. چند بار هم منو با شلاق زده برای چی تو رو؟ برای اینکه دشتوان بود. سوار اسب می‌شد و تو صحرا میگشت. هر گاوچرون یا چوپانی که زراعت مردمو می‌چرون، موسا به حسابش می رسید یعنی درست و حسابی با شلاق میزد آره بابا پس چی؟ همچین با اسب می‌اومد رود که آدم قش می‌کرد. دیگر به او رسیده بودند. سلطان با صدای بلند سلام داد. موسا به نرمی برگشت از پشت ابروهای پرپشت نگاه نافذی به هر دو انداخت و با صدای رسایی گفت عیدتون مبارک جوون ها سلطان دوچرخش را به او نزدیک کرد خسته نباشی همون موسا انشالله میری بالای تپه دیگه اگه نفسم بالا بیاد میخوام برم بالای تبه لابد شما هم میرین اونجا سپس نگاه کنج ای به اسماعیل کرد و پرسید این جوون ریشو کیه. تا حالا ندیده بودمش. یادم نمیاد زمون دشتبانی زده باشمش سلطان به جای اسمایل به حرف آمد نه امو موسا تا حالا گاوگوسفن نشرونده آهان میگم آخه یادم نمیاد پسر به این شکل و شمایی رو شلاق زده باشم زنده باشه این را گفت و دوباره راه تپه را پیش گرفت آن دو با فاصلهای کم پشت سرش راه افتادند کمی بعد موسا ایستاد و بیان که برگردد و نگاهشان کند گفت شما معطل من نشین گفت؟ اجازه بدین همراه شما باشیم من 80 سال بیشتره که از این تپه بالا میرم. اون بالا دیدنی ها و ندیدنی ها رو دیدم حالا دیگه فیتیلم پایین افتاده نوبت شوباسه که برینو ببینین و تعریف کنین یالا تا عصبانی نشدم راه بیافتین و یانه یعنی با این چوب کجوکلا راتون میندازن زود باشیم ببینم. چوب را نیم خیز کرد که یعنی میزنم آن دو خنده کنان از کنارش گذشتند و از او که صدای نفس شنیده میشد دور شدند